وصیل الله علی سیدنا رسول الله، و, و, و اللهم بعد قدس و و شریف، در بین شیعیان این نقطه از این نه در کتوب کتوب احدث کنند وجود داره نه شیعیان ما همثال گسوری ها در میان گسوری شیعی متاخر تفصیم مردی و به این صورت شد که بعد از موادث حرفات که مثلا کتاب رو مرد نغرار که پنج محصد ایشون برای الفاظ قرار که که باید شما در تخصیل مندی خود الفاظ هم مباده الفاظ هم اختلافه مثلا در کفاید مخش اول رو عوامل دوم رو نواهی سوم رو مخشم و قرار ده. در کفاید این طبه. اما مثلا در معالم عوامل و نواهی رو یک فاظ قرار داریم یا توی چون ما مطلب این دستوندی و دستی محلوم یک تثیر خیلی فراغانی در اسپی آبونه و در فهم یقیل نسبت این داره. برد علاقه همی کلمه هم کفایی نمونه باشه برای کتاب هایی که خالبا تردن اینجور نراشه شده این قید خالب هم شد سه کتاب مرموم و در فرد روی دیگه تنظیم شده این مقانستشون در عباد مباردن آسو میتردن شده همه را بعد از اون مباحث الفاظ، سه دخش دیگر هم به دو, دو اصول اولید که اینها بعد از شکل شد یکی مباحث خودش و امارات یکی مباحث حضور اعمالیه و یکی هم مباحث تا آدال این منشه این که در کتب ما پیدا شد بعد میاده به شکل و از اجایفکار این از شکل این ترتیب کننده نمیشن در اصول چون شهار تا رساله ی در بعد ما این چهار رساله ی جدادانه با هم نم و بعد یک ترتیب یعنی حوامان اینکه طابیت روش شد شد یا برها با برد شگرده ایشون شد فراید روزو بود شد هم ما دیشان نیست بعد از ما این توضیحات بود که سابقاً حرف کنن برای آشنایی با نحوه بحث و در مدهس حجت اصلا خود شیخ با عنوان مقدمه داده بود بعدها یک اصلاحی در کسابیشان شد با عنوان مقصد برانده شد از مقصد الاروز به قرد بسید شیخم برزی ها مقدمه برانده برانده بودن برزی مقصد که شد قرد خوزن اونو اون اونم مالت اتعالوز این نحوهی بود که بعد از شهر در کتب و از خادمان بحث تاروز و بحثها پای دیگه میتونه برمایستانی که در بحث خود قرار بگیم مثلا تاروز همهارا تو و تو دیگه یک بحث مستقی و اینامه همهارا داد اینامه تاروز نداشته باشید هر حال من دیگه لیگه میشهد این توضیح بزن زیده هر بحثی بازگ به این در کتوب اصوله از زمان شیفت بدن این تحول شد که بحث قد مورد بحث و ندر و جمعه از الاحکام بیان شد یکی که قابل نهی هست نهر. قابل روی هست اگر قرص مثلا از فیاس پیدا بشه قابل ورد از هر سیانه ایکی مثاله به اجمالی قطع احکام خرابانی هم در احوالی ها که قطع حاصل از دیر کتاب و سنت ارزش نداره هلا در از داره احکامی که بردی شاده ارزمه کرد راضی به قطع ادهی ار احکام رو به عنوان احکام خرد در اصول که بالی بیانه منده روشن شد این احکام در تدیم نبود نه در رسول اهل و نه در رسول شیعی قبلت شیخ به این صورت که مرماشه قرار دادن این بحث نبود و که شیخ هم اساسا نعطی کرده مکه رسالهی می اسم رساله رسال و حدیه مدنه است و اکی به قبلت نداشت قبلت مقدمتن بردرسی کردن این عنوان که علم اندر مکلد به الا حکم شبیه این کلیه الاخرین امانیت صلیه و قبل هر زن این را به این بحث و چیز رو این بحث و, سو سو و از شیل روز به مواقع و از که پیش آنه اول که این دکتر رو باز هم سالمند توضیح کافی دادن با هم دیروز هم مشاهد امروز هم رو مرحصه گجیت و هم شیخ تقدیر به نداره توی از ساید شیخ اما چه سایی که بعد از شیخ آمدن تربیر کردن به ذاتی این ما اصلا داییو می کنند نفیان ها توابیر شیخ این بود و اونجا مرادر شیخ هم حقیقتا از وجیت چیه این حقیقت گجیتی که شیخ می چیه چون هر از کردیم حبارتی شیخ ندافش که ندافش که حجوب مطابع در فرد و لزوم ملحمه الهلاس کرده و لزوم ملحمه الهلاس کرده او بگرد بکنم او شان در سال خوبیش در تردیزم این معادلین حجیبیت که شونکه وجود مطابع هر و لزوم ملحمه الهلاس کرده ایشون تربیرش اینه تربیر مرموم شیخش از شد که در از مرموم شیخ مثلا مرموم ناینی قدس الله و سره اینا نکات نیست که در عبارت این بزرگان آمده اینی که من تأکید زیاد می کنم مثلاً می به خاطر ایدیم از اینکه شما می فهمن و نوعات من روچه به مصابه از فر و روچه به مصابه از من الواغل به اصطلاح مردی به فر و نوزمون عمل به ما هم از جایه ریدخت و جد و علاقه و به قطعه به قطعه از این اعراض مرمون هایی کاملت واضح میشه که بیشون مراد با از وجود به این مرحله بیشونه که عمل نظر بیشون در عمل بکت این بس هست که خود در یک صرفت اضافه اضافه ایست به خواهر طلاب توضیحی در طلاب دنسه روزن می شایی بکنن این که انسان تبقیه اون که داره عمل میکنه مثلا فرست کنید این تناب از او فرار نمیدونه دید داره خامنه دا ما روی از فرار میکنه این فرار کردن منر کردن این عمل انسان بر تبقیه کبیه در... امروی بیجانیست این امروی بیجانی ملابشه از و این را راست کارونه تو بیدی که بودم واضح میشه ما از کردیم این عمل ویجدالی اینجوری تربیر مرموم محقش اعراقی تربیر اعراقی داره محقش اعراقی نداره آیستاد هم این تربیر تد... این جنبیه این محقش این عمل ویجدالی و مرموم های نراقی مرموم های اعراقی آه همه ها تغییر مرموم آزیان وقتی سالگاه ها نفسه محق آیا از زادیت اجازه از اول آدم موشنگ بشه مرضو کجه؟ این که تحت این زادیت این بجیه چیه؟ همین جبه عملیست؟ این جبه عملی بناشون اینه که در حالات تربیه هم هست این جبه عملی حالا حالات فردی انسانه یعنی انسان این مضوع به میدانه این مفیده انجامش میدونیم آیا ما را نرده در اصطلاح اصول اینه و نصابه نرز کردم زادر بعد از تعاویر حتی بناس شافری نصبت جازه شده شافری پر حضر زادر اولین نوشتاری که ما الان فعلا در اصول داریم ما شافریه حسی که گرفته که رسمن در اصول تنوین شده از شافریه میگن شاقه یه هم در این کتاب من صورت نایی داد به نمیم موضوع این مصور رو هجت حرار داده اصلا هجت اصلا موضوع این مصور هجت نه و ما این توضیح های در مهند خودش کردیم از این مهنده سبوتیه یا مهنده اثباتیه یا مهنده سبوتی اصطلاحا تردیم ازش مساده رو کشید مثلا میگیم چه خواب هجتش سنت هجت. هجت اثباتی است. هجت مه به حکم یک خبر قابل اجتناب و از چهای انسان در از یه همیشگی خود داره هم. تمام مسائل اصول روی این دو می‌بره یه مصادره تشخیص دو تصور اصول به حکم تصوری که مال این مصادره می‌رسه نزد خبر قابل حیات اصول این طوره حتی الان شما در مثل کفایه، میگن کفایتشون به عنوان کتاب رسمی که تقریبا تنظیم ابواب اختصاصی اصول ما، این کتابه، تقریبا در مثل کفایه شما به این تفکیک ابوابی رو نمی نمیبینید. اما بزرگان اهل سنت، خود به قدیم ما، خود قدیم, قدیم خود شیعه، حتی مثل ماوراء، ایشون بحثی خاصی کتاب داره. ما دیگران خاصی کتاب نداره، یه جور کتاب که در بحث زن صحابه که باید در آنجا محضر کرد های به اصلاحی کتاب و اصلاحی راجعه اینها الان در اصلاح ما این کتاب های و ما الان بررسی نمیشه خب صحابه اینه این بجرد این موضوع این مراد این این این همین جرد عملی این جبیه عملی که من به تدیر ملومی هایی میشه که بگید اشکاله که وجوب مطابع اصل این وجود مطابع اون جبیه عملی گرسه من اگر می ماه قرار اگر می دارم احکار هم احکار اگر دارم روز جمعه نماز جمعه بازوی می اگر می دارم, دارم بازوی می دارم اینجاست سؤال آیا ما در اصول وقتی بررسیم میکنیم به فلسولیه یک علم ببینیم با عظمت و شاملشو میریدیم مراد ما از بجرد اون جریع عملیست که بگیم خود جیهت علم زادیست خود جیهت نزادیم آیا مراد این جریع عملی ایست که مرحوم ویزای نامیه حدیث الله مرسد در پسیر عبارت شیف فرمودن از چهر درمون در خلال در ارماس با تا مجموع خیلی مختصر این جریع عملی یک تدیده ی است این دردی به حجیه به حجیه به حجیه اجتماعی نداره ما این مسئله رو سوزید دادیم که حجیه در اصول طبیعاً یک تدیده اجتماعی است. یعنی شما باید یک قانون یک آمن یک معنون یک جامعه از خرص اون خودشت مخرج بشید اما اگر شما در کوری زندگی کنید در پاری زندگی کنید از میروی در از استقاضید از آب نهر استقاضید دیگه اونجا خودشید نینیشید چون معنی خودشید دارم مثلا بگیم کلام خودشید داریم قانون وجود نداره نه حجیت سبوتی برناظر نه حجیت اثباتی در این که انسانی رابطهی با خدا داره بحث این حجیت اصطلاعی نیست اون بحث دیگریه پس بنابراین بحث حجیت که افتدارن در زندگی بشر آمده از زندگی بشر منطبست شده احتفاله بود مثلا بحث باشت هایی که ما در شریعت با قبانیم داریم این به عنوان حدیده اجتماعی مطلبه نه به عنوان یک حدیده فردیه اون حجی که روزوم عمل باشه منحل من عمل منحل من عمل امداد ام کرده عمل میکنه این یک حدیده فردیه این اصلا دائره حجیل خالصه ولیتا از کردیم مرموم آزی ها قدرت الله نصر این حجیل به مطابعه در حمله فردیه از که توزی هست وقت بایشان باشه مراد ای اینکه در حیوانات هم بیاین ای که چون حیوانات درجه مختصر در سوسکو شرمنده میگن که حیوانات این زنده که با داین زمستان مراد اینکه که از اون روزوم آنها چی هست و هیچ وقت ادراک چی هست اون لازم اون چیم که چون مناسب از چرا این به نظر ما تحلیل و اصولی اخذا میکنه مراد از کجیا که اصلا اینجا بحث میکنه و جکا اون مرحله تنجز حکم دقیق میکنی مرحله ایشه حکم متنجز میشه به عنوان جهنجایی یعنی حکم به یک مرتبه برسه که برای ما جهنجایی رو کنه توضیحش هم در دیروز از اشاره کردن سرورت پسیدن از که نوطیه اساسی در اعتبار خانونی حالا این اعتبار قانونی چه خانونی شده این چه به اقتدر و بسر بگیرین چه به این مولا و عرض بگیرین اصلا صرف خانون اینه یعنی اون حدف و اون حلط خواهی قانون دو چیزه یکی قرض عدناد، که قرض عقصا قرض عدناد ایجاز جاریه. حالا این ایجاز داری حقیقتش تا چه مرد داری؟ یه بازای صاحباً توضیف داریم مفسرن و اعزام میشود اگه خدا که توفیش دار واده هم میکنه یعنی چی ایجاز داری؟ یعنی اگر در رو باز کنم نام این من رو تخریش بکنه ایجاز داری بکنه برای انجام این همون این خودش تنجزه این مرحله تنجز اینه یک چیز دیگه هم ترمز خود آمد و مولان درست داره برمون تحقق عمل خالجه وقت یعنی باز شدن در زفت این رو آمدن در اصول اسم شروع شم فرد اردنا پس هر اعتباری دو تا فرد داره اردنا و اقصال اردنا فحریکی داره چند جاییست احسا بیسی من در حضور پرده اشتباه میکنم هم عمل در خالده حقوق اون در خارج یا استقلاف ها عمل پس مرگون در حقوق وجود مطابعه و گرده و رو قرده احسا شد از این ناید شدید به اروازشون رو ما شدان رو تحلیل قانونی میکنیم تحلیل حقوقی از سوکرارن سر یه مادر نواسی قسون در درگه یک نوع تحریر حقوقی و قانونی ارائه بدهیم که خواهده در کنید یه در اختصاص به شریعت مدرد شرام نایم اگر بخوایم تحریر حقوقی شدیم اینه حقوقیش است. ایشون گرفته پر, پر عمله ما که انصافاً تحقیل و قادمی می‌کنه که حجیه به دفعه ادنا گرفته بشه <تصفيق> و امض شد که قررز ادنا هیچ جد تفکیق نداره از جد از اعتماد و آنانی این اونی که جایمانیه اون قررز ادنا که تحقیق و هر باشه قررز امسا دا انتصال داره تفکیق داره مثلا که در بازکن باز نمیکنه. باز اون تحقیق در غرضه اقصال هست پس بنابراین از باته مرمه همه ناریم محورت نبرده مرمه آزیان اجماعه نمشن. ما با این تحقیق خودمون آمین اول این بحث رو محورت کردیم که حجیت قرد یعنی چی حجیت زن یعنی چی اصلا حجیت در اصول یا در مباحث قانونی یعنی چی سوالی حجیت در مقاحب قانونی به چه لحاظیه که این تصور ما حجیت به لحاظ قانونی به لحاظ تاثیر و تحصل قرض عقص ادناس نه قرض عقصا از کردید مرموم شهر داره لاره به پیوشوب مطابعه اترکن من معاقیات هم این مطابعه یه سمه دایم لکه مرمومنانی دادن به قرض احسا. این نوع کارتی که سابقاً باز بودید شده اینه من کهی مهمه و مسترده که کمتر بشتر از جور شده تکار پس برای از همین اول توی این مباحث خارج اینجوریه باید موضع گیری بوده اما اول روشن بکنیم مراد شما از حجیه چیه مراد شما از این که میگیم خبروازه حجته چیه مراد شما از این که میگیم کتاب یا صحنت حجته چیه این باید روشن خیلی کتر بودی که ما از کلمات شیر چون بنای اصحاب این است که به طبقه همون قاعده فلسفی معروف و قاعده فلسفی در دیمیات و واقعیات کل ما بل ارزاق و درمیان قیل و ما تو بحث حجیت هم کل ما بل ارز یعنی قیل و ما بزاق مورا بهشون این رو خواستا تطویر بکنن از این که تطویر کردن بعدشون تطویر این نکردن گردن مثلا حجیت زن رو حضییت به لحرز میزنن خبر رو اما بذاتو تو بره این این سؤال رو که ما برای ما بزدار تو لحرز در اعتبارات بانونی یک اندر اشتماعی در اشتماعی خالقی نیستیم ما به جای کلمه بزدار تو بره اینطور گفتیم یک چیزی که این کل حجت جده این این از توشی یک چیزی که در یه نظام معایم حجیت نیست جوجین و نظام که این نقطه که نقطه این این نقطه اگر ما انشاءالله که آلا چه بخص انشاءالله مطرح میکنم حجیت و اونجا عرض میکنیم چون حجیت حجیت چون شایه یا تذیر و تنجیزه که معانیم برد یا جمع محاصمه یا جرد بزنه یا همین دورم ما در فلسفیه را که از تبیین مکاشفه این مبنای مرادشه علاقی که از مبانی ما اونجا اعتراف کرد که نکته اساسی در تفسیر وحی است به علاوه بر مبانی وحیت مجبور است چه می‌تونه وحیت مجبور به کار وحی منکره منکر به مرادش هر که اجباری باشه ضمنی چیزا این وحیت مجبور به تدبیر مراد از حجیه مجبوله حجیه به بله یعنی حجیه دیگه در یک نظام معین هست مثلا از همون قرن درمی دوم در میان مسلمان ها این تفرکت پیدا شد که خبر عرض خوب دقیق کنیم این به تفرکت بود به خاطر آبایی نظام کسایی که قائل به, به خبر تفرکت به خبر وارد شدن مرادشون شد اینه تأباد داریم شر اگر عاد مثلا میگم قبول رو کنی شما حال بر ما وسوسه کرده باشه میخواد نشه اگر وسوسه باشه این وضیعه آهالایی داره اگر وسوسه نباشه این وضیعه آهالایی نداره اینو گر موجات هم داریم اون نقطه اصلیه پس بنابراین ما در بخش وضیعه این نقطه رو میخوایم جذب کنیم. کلو مادل عرضی یعنی هم تایی ما به توی بحث حجیت مادل عرضی ها بذات نداریم چرا؟ چون این رومان تو بزیار که یه بایداری میگذاری میخواستیم مطلب تمام میشوند بحث دوم بشیم چون ارز کردیم حجیت اصولا یک طبیده اجتماعی است اون لزوم عمل علاقه به فرط که به ما یک بیشتره غریزی اون مراد نیست در اینجا علاوه بر اون گفتن هم که ایشون فرمود رو قدرت خویشیادی که باعث جذبه شه بالطبع این واقعیت نداره چون انسان غیر از انطباق صورتی که در ذاته قیدا میشه یک قوای هم داره اینطور نیست که حتما هر جا اون صورت ذهنی آمد حتماً عمل هم, هم باید بعد از اون محقق بشه حالا قوای باه نه است قوای متخیله است قواهی به اصطلاح ما، قواهی دیگه هم انسان داره که اون قواه مانه از اقدام عملی است لذا مثلا شما با این که یقین دارید مرده حرکتت می کنه با این طرف هم مرده مورد، روزن مرده بخوایی در یک قطاع تنها با مورد مرده باشید خالص کب که فرار می کن باید که خطایی سرکم که حتما اگر ما قصد پیدای کردیم اون مرقله عمل هم به عنوان یک هم با زبیر مرمواقیان عمر یا یک عمر زادی واقعی بدون تفکیق مترکب بشه چرا چون قبای دیگه هست نه اینجاقه در علم مشکلی هست قبای دیگه هست که این قبای دیگر هم مانه عمله و اصولا از کردیم انصافا قانونی نیست ما به عمل برست کنیم جفن قبای ما اگر میخواییم راجع به حجیب بحث بکنیم به ذهن نیاز اونی که روح قانونی داره تنجزه اون تنجز بحث بکنیم. در درگر حجب مراد از حجب اونه که موجب تنجز میشه پس تفسیر حجب با اگر این منابازه شد این که من همین میناییم این منای جریع عملی گرفتم این نیست جریع عملی مرحله بعد از تنجزه بلکه تخلیف کنم جد پیدا کرد اون من بخش جریع عملی می آن من بزنم،, بزنم بزنم بزنم بزنم بزنم بزنگرد من باید سو اصول بیاییم خود جمس و مرحله کانونی خودش اون مرحله ای که در قرضه امنا به تحبیل اصولی ما معصره اون مرحله رو خود جمس بگیریم نه در قرضه اصلا اون باید اگر ما تنجیز شد این رو به مطرح بکنید که تنجز یعنی انتبال صورت نه وجود واقعی هایی و این دو مرهده رو بعد از جرد به بگیریم بگیم اولا مرهده جرده از کنیم اولا مبادی جرده که سه بودی رو سوگی بودن دو بعد از اونس مبادی جرد خود جرده مثلا سم بگیم چیز واجبی بعد از مرحله از مرحله تبریه یا به قرآنی انزال یا گونزه بلند که ارسال حسول به انزال کتوم باشه بعد از اون مرحله تنجزه این مرحله تنجزه وصوله به موکبله استداثه در استداثه قرآنی از مرحله تنجزه ترجیه شده به بلو لخونزه بلند در اینجام داره ملا یعنی آیات قرآنی هدف از آیات قرآنی و اقصال اصول رکیدن و بلوغ به به اسلام جامعه اسلامی و مسمان ها و مومنی با اینجا تا اینجا روشن شد که اولا مراده از مرحل کردیگر مرحله تنجازه و ثانیه این توضیح هم حد کرده حیرت اون صورتی ایستی در ذهن شخص پیدا میشه. امتقاض صورت طبعا در صورت به احکام و و احکام گردین دو موقت در صورت مطرحه یکی بلاحاد سال کبرا یا کلی و یکی هم بلاحاد خالقی یعنی برای این حکوم الانی من از صورت یه خمر حرام هست دو این مایه خمر. هست اگر گفتیم خبر حرام هست و این مایه خمر، اون وقتی این انتباه بیده این که بیده کنجز بیده پس تنابراین وقتی میگه موضوع این محصول خود یاری یعنی ما در کل قرمات اصول خوب تنابیه دنبال تختیق حال این صورت ذهنی هست در موازش خانونی و حبودی که ازش خانونی داره اون ماه انتباه امن رو بررسی بسنن انتباه اون دومی که انتباه موضوع باشه و تشکیس موضوع باشه این هم به خود مخلط با بزار کردن و لذا ممکن است یک مخلط بیرگیم داره کمه مخلط بیرگیم یعنی داره مطابقه یعنی خب روشن شد رو تحقیق قانونی پس به لحاظ اصولی این تحقیق هم روشن شد که چون داری دو مرحله هست یه مرحله رو گذاشتن رو به خودمو کردن نیامدن تو اصول بحث بکنن ما نیامدن در اصول بحث البته دارن این بخوام بگم ندارن همون به صورت کبریات شرا اون کجا کجاست؟ در جامعه که نحوه تحبودی آمده مثلا تحبود آمده که اگر آدل گفت این آبه قبول بگه این, این خنوه قبول بگه اون هایی که نحوه تحبودی آمده چرا اونجا رو مذرر سده چون ارز کردیم ممکن است شارع و مغنه به دواز موضوعات خارجی ها هم بیاد همراه رو مختلف و یک تصرفاتی رو بکنه. اصل اولی حضر لاکه اون جهادی ادجان که خود این جهت احتیاج به توبی است میشه در باهی ما بگوییم دستیار سعی نجام دهیم اوقات مزابی در مسأله ادجان و هدیه زیادی اونجا متعرض شدیم شو مثلا یک جمع دهیم اوقات مزابی اقابی هم وظیفه داریم مطلب رو به نهرو انشالله مسو کمتر از میشه انشالله صادق یکی که بعضی وقتش مال باشه و آرتش میشه خیلی وقتها ما اینجا رو چند که در حیفت بحث خوشت و امارات و اصول عملیه و فارس بس کل ارحاظ اصول در نیجرده به تحلیل این صورت ذهن ما از خوش تحلیل این صورتی که ما در ذهنمون از خوشم داریم به این معنا چه صورتی منجزه چه صورتی منجز می با چه صورتی مرتبه تنجز پیدا میشه این تنجز قسمش خود جده پس بنابراین خوب فکر کنم واضح شد از اول امراس اصول تا آخر اگر به بشه تمام حمیقت بحث ساجه به این قسمت از با تنجز کردیم اساس در مواردی که بر میگرده به در اصول و ما آمده این مراتبیه که بر میگرده به موضوع و در اون تعبوز شرگی باشه اون رو با آمده یک چیز برداشی قرار میکنم مابین اصول و فه نجذب فهور نه نجذب اصول مثلا خبر ادبیات در موضوعات خارجی در کشف موضوع بجای نکیه این دامنه اصولین ما محسوسن از واسه قبلی ها چه علم های هده سنن چه در این جرد کارهایی شده و که انصافتر در این کارهایی که برنامه مرمونایی انجام دادن یه مددار این انسجام پیدا کرد اما در این بخش های تبدی که راجع به صورتی که در موضوع به خارجی این بوده شدن دواهد فقریه خارج فقریه نگاه شد سه دا مسئله فخری مسئله اصولی قاعده فخری اون که راجع به تشکیف موضوعه اسم شد قاعده فخری ولی مثلا مرمون جامعیمی قدر ازالله همه سر استثاب رو در شما تو کلی مسئله اصولی رو همین استثاب رو در موضوعات قاعده فخری دارن ذات کشو وارد وقتی مثلا آبی نجس بود از بهش آب اضافه کنیم پاکور شود خب اینا اقتصاد بقا نیاز داره اضافه بر اول ما قادر قرر نمیکونیم کامل نشه میشونه اقتصاد بقا نیازت بکنه یا آب نجس شد یعنی خون گرفت و نصفش گذشت خون خود رو خود رو گرفت زوال تغییر میشه بالای نقشه آگه این آب الان پاک شده آب دیگه نمی تونه نگونا نذره یا چون ذات آب نجس بود هنوز هم نجسه اون آمونی که بایدن به نجاست استثابه و بایدن نجاست می این هاش که باقید به کنی این رو گفت گفت قسم شبیده مسئله حسولی و همون قاعده بکرد که این آب سابقا نجس بود حالا نجس یا همون و من چون این نکته مهم محب میعرض کردیم در عبارات من استاد در همین جام در نسبا ایشون چند بار در این رو بیزن مقرر نداشت من رو فکر میفرمون از سر اقواد احبات... کن بیم اقواد اصلاح برمار من رو استاد داری جا از اینکه که اینو داره من اقواد کامل حرض کردم اگر باز بازن در باشه اقواد شکل آباشون من رو میداری که استادم محاضر شدند اینطور گفتم مسئله حصولیه قاعدتون کنیه طبع و نتیجت ها فی طبع و نتیجت ها که را فی پیاس استنباز حکم شرعی فرعی کدی چه من موستا تمامی بوده ندارم پس مسئله حسولی در که به تفسیریشان هر مسئله که طبع نتیجت اصلا خبرواز بجرد هست داد همون زخور در وجود دار نتیجه اون مسئله کبرایه یک پیاسی که رو گرفته بشه که از او استنتاج و حکم شرعی در مقابل فیدی کشیم فرعی در مقابل حسول اقاید کلی در مقابل اجاله که که قاعده ففی این تفسیر مسئله حسولی بودیم هم قاعده ففی قاعدتون کلیه طقب و نتیجه تا کبرا فیردیاز استنتاج حکم شرعی فرعی جزی این نمون آهدشون کلیه این جزیه شما در موضوعی حکم کلیه دردارید که کلو ما انزال تقریه حکم قبل نفس تاره نه این ستا در شما کلیه. این ما به دست اصابت شود موزریه ایشل پایگاهی کرد که این تفسیر از کجا نمیخواد؟ چون سوالشیم وقتی میگم از چیم بهم چه کات میشود؟ چون دو دهه جایی داریم که دختر آن بیشتریم از کجا خیلی نمیخواد؟ فضل اعداد داریم دکتر ناشتمون هم نصب قوانین پریه داریم شهید آباد قوانین خوازد شهید سانی داریم ما بگویم از قوانین رو چه خودمون داریم. در حمد سنت هم بیشتر به عنوان الاشباه و نظاره داریم حمد سنت یک اصول داره، یک سلسل کتب هم به عنوان الاشباه و نظاره دارن اصلا اشتار محبیدی هم از آن الوقت کردیم این اصلافم مطالعه این کتاب خیلی برای استفاده اینیه شما چون این الاشباه و نظاره تر شد هم یک دوره کامل دوره فکره و اثر تا کہ 20 تا قاعده، 3 تا قاعده، 6 تا قاعده از این جهت برای احاطه برفه خیلی مفیده که هر قاعده این به این فرشباده تائار کشه، یکی شرکت کنه، یکی شما زیاد باشه، خیلی احاطه می‌داره. از اشوابا بر نظر ان شاءالله از در مباحث در اهل سنت تو که من دیدم در مزارع اولش داره. که من مخصوصا با اشواب نظر جلاد برزور مرتبه شافیه نبشه من دوستم بردیشون نمیدونم مثلا زادری هم دارن یا نمیدونم نگه زیدی هم اما شاه مرتبه مروح دارن ما تبییر اشواق و نظاره داریم داری, داری محکم اتصال ما و از و نظاره داریم این محکم مردش نیسته از این چیز چیز دیگه به هر خیلی وقت تکسیم اما بعدها پیش ما به عصیل قاعد و به ارهای مرزوندی شد این خیلی لطیقه این مرزوندی شد و بعد آسان امداز باگی مثلا اگر شما درخت انگور کاشید که از اون شراب درست کنید این رو اغلدن در مقام استنتاج ازای مقدمه حرام گفتن حرام اما انگور رو خیلید اگر آقای که شراب کار شراب داره این رو ازای احانه بر گفتن حرام حالا بیرد حرام در فعل نفس اعامه در فعل نفس اعامه در فعل نفس اعامه بیرد و مسئله اعصابی قرار بزن یکی و قادره شدید یکی و که میتابند باقا در حسود در اول این اقضای اعام داره به انهاد که این تحریکه و تحرق کاملا این مزبندی روشن شد اون موظمه حرام مسئله اعامه زرافت می خواهد شکر بکنید گفت اونجا شما اگر انگور بخارید به قصد اینکه که شکر باید که سه سال چون می شه که انسان کاش انگور بده؟ سه سال چون می این از با مقدم حرام. حرام و مقدم حرام رو توی اصول بررسی کردن اما اگر انگور فروختید به کسی که میخواد شراب دست کنه این آنه برگه ایسا نساب داره, برزه داره, برزه داره. من کران هر سرمی که من اون کارهای اخیر غلمایشیه انسا را نهی تأثیر دارم نسبت به کل در و حصول یک تنگیرات کلی ایزاد کرده ای یه باشه این تغییرات این آشنا ماشین این مرزنگی این صحبت این،, این کارهای، کارهای بسیار بزرگید که از در شداره که باز این ها آمده که دقیقا, دقیقا شاید مراجع جدیش رو همین باشه خیلی محصره مثلا خود من شخصا به مرمونانی فوق روزه ای استفاده خاصیم رو به دین با محاضی های در شانسه لیکن من معتقدم اصحاباً در این ذکابت و استعداد ذاتی ایشان دا خوشکی ایشان دا بودن در اینه ها در قفت نظرشون از یک فهم غرفی سر خارج نشن خیلی قابل استفاده اصحاباً اصحاباً اصحاباً هم از کردیم کنیشون بحث شد یه روزی با معلوم احتوال صلاح بوجی نردی صحابه روان بسیدیه صحبت احنا و علمانشی به شبون روزنی من سکردن که به نظر من احنا و در طولت روزن شکلون معلوماتی میخوستن اعتقادیشان به اونج علیه احمد صلوه احلیتون اجوائین برقیه و سال